صفحه پنجاه و نه بخش هفتم آمدن جن هنگامی که جن به سرحد شفق رسید با شتاب به میان آن پرید اما با احتیاط وارد دشت هایی که میشناسیم شد چون از سک ها می ترسید چونان آهسته از میان توده های متراکم شفق به درون دشت های ما آمد که هیچ چشمی او را نمیدید دید آن که بر نقطه ای که او ظاهر شد دوخته میشد. سپس دمی مکس کرد و به چپ و راست نگریست، هنگامی که هیچ سگی ندید صد شفق را ترک کرد، این جن هرگز به دشتهایی که میشناسیم نیامده بود، اما خوب میدانست که باید از سگها دوری کند، چون ترس از سگها در میان تمام آنانی که پستر از انسان هستند، چنان جرف و جهان شمول است که گویی از مرزهای ما هم گذشته و در سرزمین پریان هم احساس شده است. در دشتهای ما موسم بهار بود و آلاله ها در برابر جن قد برافراشته بودند. جهانی از رنگ زرد با قهوهای سبزهای در حال جوان زدن آمیخته بود. هنگامی که آن همه آلاله درخشان را دید، ثروت زمین شگفت زده اش کرد. دمی بعد در میان آلاله ها راه می رفت و ساق پایش زرد شده بود چندان از سرزمین پریان دور نشده بود که خرگوشی را دید که راحت در سبزه ها دراز کشیده و داشت به چیزهای مهم فکر می کرد. حتی هنگامی که جن را دید بدون هیچ حرکتی و بدون هیچ تغییری در حالت چشمهایش همانجا ماند و به فکر کردن ادامه داد وقتی چشم جن به خرگوش افتاد، نزدیکتر پرید و در میان آلاله ها جلوی خرگوش دراز کشید و از او راه رسیدن به سکونتگاه انسانها را پرسید. خرگوش به فکر کردن ادامه داد. جن تکرار کرد آهای، موجود این دشت ها، سکونتگاه انسان ها کجاست؟ خرگوش از جایش برخاست و به طرف جن آمد، قیافه خندداری پیدا کرده بود چون راه رفتن خرگوش اصلاً به زرافت دویدن یا جهیدن او نیست و جلویش خیلی کوتاهتر از پشتش است. خرگوش دماغش را به چهره جن نزدیک کرد و ابلهانه بو کشید. جن گفت راه را نشونم بده. پس از اینکه که خرگوش مطمئن شد جن اصلاً بوی سگ نمی دهد رضایت داد که جن از او سوال کند اما زبان جنها را نمیدانست. برای همین دوباره دراز کشید و در مدتی که جن میپرسید به فکر کردن ادامه داد سرانجام جن از پرسش های بی پاسخش خسته شد و از جایش بلند شد و فریاد زد سگها و خرگوش را ترک کرد به دو از میان آلاله ها گذشت و راهی را پیش گرفت که از سرزمین پریان دور میشد. هرچند خرگوش زبان پریان را نمیدانست، اما در صدای جن هنگامی که فریاد زد سگ‌ها خشونتی نهفته بود که خرگوش را ترساند بنابر این فوری با جای راحتش در سبزه ها وداع کرد و جاهشکنان و در حالی که ترسان به جن مینگریست، از مرغزار دور شد اما چندان تند حرکت نمی کرد و بیشتر روی یک پایش راه میرفت. و یک پایش را آماده نگه داشته بود تا اگر سگها واقعا آمدند بر زمین بگذارد کمی بعد مکس کرد و نشست و گوشهایش را بالا گرفت و به آلاله ها نگریست و اندیشید و پیش از آن که بتواند منظور جن را بفهمد جن از دید خارج شده آنچه را گفته بود از یاد برده بود کمی بعد جن شیروانی خانه ای را در کشت زاری دید که از پشت پرچینی بالا آمده بود، گویی با پنجره های کوچکش به او مینگریست، با خودش گفت سکونتگاه انسانها و اما گونه ای غریزه پریانه به او می گفت که شاهدخت لیرازل به اینجا نیامده است، با این وجود به کشتزار نزدیکتر و به ماکیان درون آن خیره شد اما در همان لحظه سگی او را دید که هرگز یک جن ندیده بود. از خشم و شگفتی فریادی سگی برکشید و بازمانده نفسش را برای شکار نگاه داشت و به دنبال جن دوید. جن ناگهان از جا پرید و بر فراز آلاله ها جهید. گویی بالای هوای نزدیک زمین پرواز میکرد و سرعتش را از گنجشک وام گرفته بود. سرعت شگرف جن برای سگ غیر منتظره بود و خاموش با دهان باز نیم دایره بلندی را به دنبال جن دوید و در تمام راه ضربه های باد بر بدنش میخورد. این نیم دایره را با این امید بر باد رفته دویده بود که جن را بگیرد. اما خیلی زود عقب افتاد. جن با سرعتش بازی میکرد. هوای معطر فراز آلاله ها را با یک نفس فرو میداد. دیگر به سگ فکر نمی کرد، اما به خاطر لذتی که از سرعت می برد از آن فرار دست نکشید و این تعقیب غریب در تمام آن دشت ادامه یافت جن برای لذت می تاخت و سگ به حکم وظیفه جن به خاطر تنوع پاهایش را به هم چسباند و از روی گلها پرید خودش را روی دستهایش انداخت و پشتک وارو زد و سپس آرنجهایش را باز کرد و دوباره و دوباره در هوا پشتک زد و جلو رفت این کار را بارها تکرار کرد و بدین ترتیب خشم سگ که خوب می دانست در دشتهایی که میشناسیم شناسیم این گونه راه نمی روند افزون شد اما با وجود خشم شدیدش دریافته بود که هرگز به جن دست نخواهد یافت کمی بعد به کشت زار برگشت و اربابش را پیدا کرد و در حالی که دوم می جنباند به سوی او رفت دومش را با چنان شدتی تکان میداد که کشاورز مطمئن شد کار مفیدی انجام داده و او را نوازش کرد و ماجرا به همین جا پایان یافت واقعا هم همین که توانسته بود جن را از کشتزارشان بیرون کند کار مهمی بود چون اگر درباره شگفتی‌های سرزمین پریان با جانوران آن کشتزار سخن میگفت حیوانها انسان را مسخره می کردند و کشاورز از وفاداری همه حیواناتش البته بجز سگ وفادار محروم می و جن شادی بر نوک آلاله ها می پرید و میرفت کمی بعد در میان گلها روباه سفیدی را دید که با سینه و گونه سفیدش نگاهش می کرد و او را در حال حرکت وارسی می نمود. جن نزدیک شد و نگاهی کرد روباه هم همچنان به او چشم دوخت چون روباها همه چیز را بررسی می کنند تازه از گردش دزدکی شبانه اش در مرز شفق مرز بین اینجا و سرزمین پریان به دشت های نشین بازگشته بود روباه حتی به درون سرحد شفق هم نفوذ میکند و در میان شفق همراه می رود بخشی از فریبندگی روباه در دشت ما ناشی از رمز و راز آن شفق غلیظ است که بین اینجا و آنجا قرار دارد. جن گفت: سلام سگ هیچکس. چون در سرزمین پریان روباه را میشناسند و اغلب او را دیدهاند که در طول مرز هاشان راه میرود این نامی است که به او دادهاند روباه سرانجام پاسخ داد: سلام چیز آن سوی مرز. چون او زبان جنها را می دانست. جن گفت آیا سکونتگاه انسانها به اینجا نزدیک است؟ روباه به همراه لبهایش ریش و سبیلش را هم تکان داد مانند تمام دروغگوها پیش از صحبت کردن فکر کرد و گاهی سکوت خردمندانه بهتر از سخن گفتن کار می کند گفت انسانها همه جا زندگی می کنند. جن گفت نه سکونتگاهشان کجاست؟ روباه گفت برای چه میخواهی بدانی؟ جن گفت پیامی از سوی شاه پریان دارم؟ روباه با شنیدن آن نام ترساور هیچ احترام یا ترسی از خود نشان نداد اما آرام سر و چشم را تکان داد تا حراس خود را پنهان کند گفت اگر یک پیامداری سکونتگاهشان آن طرف است و با پوزه دراز و باریکش به سوی ارل اشاره کرد. جن گفت چطور به آنجا بروم؟ روباه گفت با بویش آنجا سکونتگاه بزرگی است بوی وحشتناکی دارد. جن گفت ممنونم سگ هیچ کس و او به ندرت از کسی تشکر می کرد. روباه گفت من هرگز به آنها نزدیک نمی مگر برای و مکس کرد تا در سکوت فکر کند. جن گفت مگر برای چی؟ مگر برای مرغها و خروزها و در سکوت جرفی فرو رفت. جن گفت خداحافظ سگه هیچ کس و بر روی پاشنهایش چرخید و راه ارل را پیش گرفت. جن که در تمام صبح ژالگون از روی آلاله ها گذشته بود بعد از ظهر راه درازی را پیمود و پیش از شامگاه دود و برج های ارل را دید همه چیز در حال ای فرو رفته بود و شیروانی ها و دودکش ها و برج ها از لبه دره بالا آمده بودند و دود با حال و هوایی رو همه را پوشانده بود با خودش گفت سکونتگاه انسان ها و در میان سبزه ها نشست و به آن نگریست کمی بعد نزدیک تر شد و باز به آن نگاه کرد از منظره دودی که از توده شیروانی ها برمیخواست خوشش نیامد در سرزمین پریان در مورد خرد انسان افثانه ای وجود داشت و دیدن آن خانه های متراکم هر گونه احترامی را که آن افسانه در ذهن سبک جنپدی داورده بود از بین برد همچنان که به آنها نگاه می کرد، دختر کچولوی تقریبا چهار ساله ای را دید که از جاده میان دشتها به خانه در ار باز می گشت. با چشم های گرد به همدیگر نگاه کردند. کودک گفت، سلام، جن گفت، سلام بچه انسان. اکنون دیگر نه به زبان جنها که به زبان رسمی سرزمین پریان صحبت می کرد. زبان پرعظمتی که ناچار بود هنگام حضور در برابر شاه با آن صحبت کند برای همین هرچند جنها هرگز در خانه هاشان به زبان سرزمین پریان سخن نمی‌گفتند و زبان جنی را ترجیح می‌دادند اما این زبان را می‌دانست آن روزها انسانها هم به این زبان صحبت می‌کردند چون زبان‌های کمتری وجود داشت و پریان و مردم ارل هردو به یک زبان سخن می گفتند. دخترک گفت، تو چی هستی؟ جن گفت، جن از سرزمین پریان. دخترک گفت، همین فکر را می کردم. جن پرسید، کجا داری میری بچه یه انسان؟ دخترک گفت، میرم خونه. جن گفت، ولی ما نمی خواهیم اونجا بریم. دخترک گفت، نه. جن گفت، با من به سرزمین پریان بیا. دختره کمی فکر کرد، بچه های دیگر هم به سرزمین پریان رفته بودند و پریان هم همیشه به جای آنها یک موجود شبیهشان را می فرستادند و بدین ترتیب دیگر دل هیچ کس برایشان تنگ نمی و هیچ کس ماجرا را نمی فهمید. کمی به شگفتی ها و تازگی سرزمین پریان و بعد به خانه خودش فکر کرد، گفت، نه، نه، جن گفت، چرا نه، دخترک گفت، مامان امروز صبح یه شیشه مربا درست کرده و با جدیت به سوی خانه براه افتاد، اگر به خاطر آن شیشه مربا نبود، به سرزمین پریان میرفت. رفت، جن با تحقیر گفت، مربا؟ و به دریاچه‌های کوهستانی جرف سرزمین پریان اندیشید به برک های بزرگ سوسن که بر آب‌های آرامشان شناور بودند به سوسن‌های بزرگ آبی که روی دریاچه‌های سبز جرف به درون نور پریانه قد برمی‌آفراشتند این کودک به خاطر مربا آنها را رها کرده بود سپس بار دیگر به یاد وظیفش افتاد به آن تومار پوستی و افسون شاه پریان برای دخترش زمانی که می‌دوید پوست را در دست چپش و هنگامی که روی آلاله ها پشتک می‌زد در دهانش گرفته بود اندیشید که آیا شاه دختر اینجا یا انسانها سکونتگاه های دیگری هم دارند با فرارسیدن غروب به خانه‌ها نزدیک و نزدیک‌تر خزید تا بشنود به آن که دیده بشود